اونچه که دستگاه های سیاسی غرب امروز ترویج میکنند همان همون است که بیست پیغمبر برای زدودن اون از محیط زندگی بشر به وجود آمد نشانه های همون جاهلیت امروز در دنیا در این تمدن رایج فاسد غربی مشاهده میشه همون بیعدالتی همون تبعیض همون نادیده گرفتن کرامت انسان همون عمده کردن مسائل جنسی و نیازهای جنسی قرآن کریم خطاب به همسران مکرم پیغمبر میفرماید و قرنفيبو کهن بلا تبرج تبرج جاهلیت اولی یکی از نشانه های جاهلیت اول تبرج زنانه است امروز تمدن غربی یکی از عمدهترین ترین مظاهرش همین تبرج است این همون جاهلیته متهای جاهلیتی که خود رو توانسته است با صلاح تبلیغات مدرن مجهز بکند حقایق را از چشم مردم بپوشاند. اینا رو باید ما مسلمان ها بفهمیم. اینا رو باید بدانیم.